درود بر شما من مهدی خدادادی هستم سازنده و راوی پادکست الف با کمک دوستانم سعی کنم تو هر قسمت از این پادکست نمایشنامهی ای رو برای شما روایت کنم در قسمت 29 همه پادکست الف میخواییم نمایشنامهی موش از بهمن فرسی رو روایت کنیم مثل همیشه قبل از شروع روایت نمایشنامه بریم یه خورده بیشتر با بهمن فرسی آشنا بشیم بهمن فرسی متولد دوازده بهمن 1312 در شهر تبریزه، یعنیشون دوازده دوازده دوازده به دنیا آمدن. در حال حاضر ایشون در سن نوت سالگی در لندن زندگی می کنند. اما چه شد که بهمن فرسی از تبریز به لندن رسید؟ وقتی چهار سالش بود به همراه خانوادهش به تهران اومدن، و در چهارده سالگی تصمیم گرفت که ترک تحصیل کنه و مشغول به کار بشه کار هنری خودش رو از داستان کوتاه و شعر شروع کرد اولین داستانش به اسم نبیره بابا آدم در سال 1332 چاپ شد در حالی که قبل از اون هم در نشریات مختلف مشغول به کار بود بهمن فرسی متفاوت با همسرانش فکر می کرد و این نگاه متفاوت در آثار مختلفش به چشم میاد. نمایشنامه گلدان که در سال 1340 چاپ شد اولین نمایشنامه ابزورد فرسی و احتمالا اولین نمایشنامه ابزورد ایرانی بود. بهمن فرسی در آثارش به طور مشهودی زبان انتقادی داره که این لحن انتقادیش رو در همین نمایشنامه موش هم خواهید شنید. در داستان و نمایشنامه های فرسی، شخصیتها که به نوعی روشن فکر تلقی میشن با روحیه آسی، با مفاهیم مهمی مثل زندگی، راستی و دروغ، حقیقت و بیپناهی درگیر هستند. از اون تا به الان پنج مجموعه داستان، پنج مجموعه شعر، یک رمان و دوازده نمایشنامه چاپ شده. برخی از این نمایشنامه ها با کارگردانی خودش در ایران روی صحنه رفتند، در دنیای هنر و نوشتن اون رو هنرمندی آزاد، مستقل، معترض و فعال میشناسند. از نقاط عطف زندگیش میشه به مهاجرتش به انگلیس در سال 1356 اشاره کرد. در اونجا نشر خاک رو دایر کرد و به فعالیتش ادامه داد. شاید براتون جالب باشه که فرسی سابقه بازیگری هم داره و در دو فیلم پستچی و دایره مینای مرحوم مهرجویی در سینما و در دو تاتر تلویزیونی ایفای نقش کردند. به طور کلی فرسی خودش رو تئاتری میدونه و همین ویژگی غیر سامت آثارش مخصوصا نمایشنامه‌هاش باعث شده که اولویت با دیدن و نه این آثار باشه. ولی خب به هر حال این قسمت از این پادکست هم غنیمتیه برای ورود به دنیای بهمن فرسی. و تجربه یکی از متمایزترین نمایش های زبان فارسی یعنی موش من سعی کردم با بازنویسی متن اون رو برای یک روایت تکنفره که ذهن مخاطب بتونه دنبالش کنه مناسب کنم اما به هر حال شیوه نگارش نمایشنامه به صورتیه که پیچیدگی های خودش رو داره و بسیار دیالوک مهوره و توصیه هم اینه که با دقت و تمرکز بیشتری اون رو گوش بدید. این نمایش نامه برای اولین بار در سال 1342 در ایران و توسط نشر نامه های سیاه چاپ شد. اما نسخه ای که ما ازش برای نوشتن مد این قسمت استفاده کردیم از نشر بیت گل بود که الان در دسترسه و میتونید تهیه کنید. اگر پادکست ما رو دوست دارید و اگر از اون لذت میبرید، و فکر می کنید ممکنه برای بقیه هم مفید و جالب باشه لطفا اون رو به دوستانتون معرفی کنید این بهترین و موثرترین ترین شکل حمایت از پادکست سالف و البته اغلب پادکست های فارسیه دمتون گرم در زمن میخواستم ازتون بخوام که یک لطف دیگر هم بکنید اون هم سابسکرایب شدن چنل یوتیوب میتنایتی استه توی این چنل علاوه بر این که محتوی ویدیوی مرتبط با سینما و تلویزیون و دنیای سریال مثلا تولید میکنیم دو تا پلیلیست مرتبط با پادکست علف هم داریم اصلا خود پادکست هم از یوتیوب منتشر میشه و از اونجا هم میتونید پادکست رو دنبال کنید خلاصه من رو خیلی خوشحال میکنید و البته بهم بسیار کمک بزرگی خواهید کرد اگر یوتیوب میتنید کس رو سابسکرایب بشید بریم سراغ نمایش موش، اثر بهمن فرسی، قسمت 29م پادکست الف. دیگه بیخیال تعویز تلویزیون قدیمیتون بشین اندروید باکس نتباکس تلویزیون خونتون رو هوشمند میکنه و شما رو به دنیایی از فیلم و سریال ایرانی و خارجی وصل میکنه اگه شما هم برای تماشای فیلم و سریال از بصل کردن فلش یا لپتاپ به تلویزیون خسته شدین نتباکس کار براتون، راحت میکنه. نت باکس دستگاه پخش کننده اندرویدی فیلم و سریاله فقط کافیه در گوگل اندروید باکس نت باکس رو سرچ کنید تا همه اطلاعاتی که نیاز دارین رو پیدا کنید با وصل کردن نت باکس علاوه بر اپلیکیشن های فیلم و سریال داخلی به سرویس های اختصاصی خود نت باکس که شامل فیلم لند، موزیک لند و کانال هم میشه دسترسی پیدا کنید که از غذا همشون رایگانند. با نتباکس میتونید لینک هر فیلم، سریال و ویدیویی که با گوشیتون پیدا کردین حتی لینک فیلم و سریال های داخل کانال های تلگرامی رو با زدن چند تا دکمه روی تلویزیون هم پخش کنید. قابلیت ایرپلی از گوشی های آیفون و قابلیت کست از گوشی های اندرویدی روی نتباکس به راحتی قابل استفاده است. نتباکس رو میتونید از سایت اصلی نت باکس به صورت نقدی یا در چهار قسط با پرداخت اقساطی اسنپ پی بخرید. ارسال نتباکس رایگانه و دارای مهلت هفت روزه بازگشته. لینکایی که لازم دارید برای که بتونید اطلاعات بیشتری و دست بیارید یا از نتباکس خرید کنید در توضیحات این قسمت قرار گرفتند. اسپانسر این قسمت پادکس سالف نتباکس. داستان این نمایشنامه از اتاق مدیر دولت شهری که در گذشته اسمش ترفنج بوده در هفته دومین طبقه یک ساختمان بلند شروع میشه میانجی که در واقع همون راوی داستانه وسط صحنه میاد و برامون از این دنیا میگه از عمر این دنیا نوت سال میگذره نوت سال پیش ده نفر روشن فکر پولدار اینجا رو از مردمانش خریدن و چون پای پول زیادی در کار بود همه مردم قبول کردند. اگر هم چیزهایی هست که خیال میکنیم اونها رو نخواهیم فروخت به خاطر اینه که پیشنهادی با ارقام مناسب به دستمون نرسیده قرار بود فکری توی این دنیا اجرا بشه که از زمان تشکیل هسته زندگی اجتماعی بشر حرفش بوده آین فردی یعنی باید شرایطی پیش نیاد که جامعه مجبور باشه جلوی فرد بیسته و اونو محدود کنه و اگر پیش اومد اون وقت این جامعه است که باید عقب بشینه اون ده نفر ت یک قطنامه رسمی هدفشون رو به دنیا اعلام کردن در کنار این قضیه به مردم گفتند که میتونن بچه های زیر هفت سال خودشون رو به این کشور بفرستن اما پدر و مادر این بچه ها نمیتونن وارد شهر بشن این شد که این کشور که در ابتدا شهر بود صاحب 6 میلیون و 126 هزار نفوس هفت ساله شد اونا تمام عناوین رو کنار گذاشتن این کشور رئیس جمهور و وزیر و وکیل نداشت فقط مدیر عرضشگذاری رو عوض کردن و تمام اون کودک ها رو هم بردن توی اردوگاه و روحشون رو سوحان زدن بهشون یاد دادن که آدمها هیچ فرقی با هم ندارن و همه باید به داشته‌هاشون راضی باشن فخر موقعیت و شغل از بین رفت و ارزش طبیعی آدمیزاد پیش اومد و بعد زمان گذشت و حالا خب از اینکه سرتون رو درد آوردم هیچ مظمرتی نمیخوام یعنی مظرت خب چه دردی رو دوام میکنه فعلا شب بخیر صحنه تاریک میشه و کمی بعد به توندی نور برمیگرده مدیر دولت، مدیر مسکن، مدیر فرهنگ، مدیر پاسداری و مدیر بهداشت دور میز روی سندلی های ناهمسان نشستند. مدیر نفوس با عجله و نفس زنان وارد میشه و به خاطر تأخیرش اصرخاهی میکنه. سلام، سلام، ببخشید من همه تلاشم رو کردم به موقع برسم. اما باز نیم ساعت دیر شد. کاش میشد این هفتاد طبقه رو با چیزی بجزا سانسور بالا آمد. خب بله، موش، مدیر فرهنگ میگه میخواستم تذکری بدم. به نظرم شایسته است که ما در مذاکراتمون از اسم اصلی این فرد استفاده کنیم. در غیر این صورت به نظرم به صورت غیر مستقیم به اون توهین میشه. مدیر نفوس میگه که کاملا درسته. ولی باید توضیح بدم که این فرد 85 سال پیش اسم و فامیل خودش رو کلن به یک کلمه تغییر داده. موش تمام مملکت اون رو به همین اسم میشناسن و هاکی از احترام هم هست این کار اون معنی کلمه موش رو هم عوض کرده موش تا قبل از این معنی هقارت و موزیگری میداد کوچیکترین رازی توی زندگی این فرد نیست این فرد زندگی خیلی به خصوصی داشته بد نیست، خوب نیست، مخالف نیست، موافق نیست، رام نیست سرکش نیست، دوستی نداره، زن نداره با قانون سرکارش نیفتاده تو بگو اختلافی داشته باشه مرافعی کرده باشه بدوزده، بزنه، بدگویی کرده باشه عریضهی، تشویقی، پاداشی، شکایتی، ترقی هیچ ابدا اون از هر چیزی که میتونسته اسمشو تو دهنها بندازه فرار کرده حتی سفر هم نکرده مثل یک میخه که کنجه یه بکوبن؟ مدیر پاسداری میگه که سعی کن مثالی بزنی که بوی پهند مدیر فرهنگ میگه شاید طویله توی این مثال فقط تعبیری باشه از دنیای دیروز مدیر پاسداری میگه که اختیار دارید پس بفرمایید که ما ساختمون عریض و طویله فکریمون رو, رو روی یک طویله کار گذاشیم دیگه با تذکر مدیر دولت بحث برمیگرده سر جای قبل بعد از این، مدیر نفوس برمیگرد و سراغ گزارشی در مورد موش که همراهش آورده. در حدود 110 سال قبل از تاریخ نگارش این گزارش، در شهر تورفنج در اتاق مسافرخانه‌ای، حدوداً 12 نیمه شب در میانه ماه اول زمستان به دنیا آمد. تحقیقات بعدی روشن کرد که اعقاب نامبرده به قوم مقاوم و بی‌آزار اسکیمو میرسد. پدرش آذری بوده. در بزرگشسمره وصلت زنی عرب با مردی گرجی که حرفه خراتی داشته، جدش ترک آوار بوده و پدران وی از دو تایفه روس و قرقیز بودند. مدیر پاسداری با عصبانیت میگه مطمئنی کسایی که این گزارش رو نوشتن قصد شوخی با ما رو نداشتن. برای پایینی ها همیشه این امکان هست که بالا ها رو دست بندازن چون این تنها کاریه که میتونن بکنند. مدیر دولت با تک میگه که، ادامه بده. ولی قسمت‌های غیر ضروری رو هست کن. مدیر نفوس به برگه نگاه میکنه و میگه بنابر اظهار مدیر مسافرخانه پدر نامبرده بعد از تولد فرزندش از مسافرخانه خارج و ناپدید شد. این رفتار غیرهیوانی در نظر تمام مردان شجره این فرد یک سنت رایج و ستوده بوده است. پدر جد نامبرده گفته که پدر سرپوش رشد خصال انسانی فرزند است و در عوض کردارهای ناهنجاری از قبیل تقلید و اتکا را در وی بارور میسازد. مدیر بهداشت میگه که رشد انسانهای اولیه. رشد بیبرنامگی مدیر فرهنگ میگه: "نه نه، دقیقا بهتر بگیم رشد مسلح. فرزندی که در کانون خانواده پرورش پیدا میکنه مثل سربازی میونه که با تصویر اسلحه فنون جنگ رو یاد گرفته." پس فنونی که به این سرباز یاد می کهنه و تجربه شده است یعنی ای بسا فردا یا حتی امروز دیگه نشون اونا رو به کار برد اما بچه های خود رو از همون اول با خود اسلحه وارد میدون میشن می, می شن و هر فنی رو به قیمت یک بار شکست در همون فن یاد می گیرن حالا باید دید این آزمایش مخصوص در این خانواده چه نتیجه ای داده مدیر نفوس گزارش رو ادامه میده. مادر نام برده ساعتی پس از تولد طفل به علت خونریزی شدید دیده از جهان فرو بست و طفل را به بنگاه حمایت از نوزادان سپردند. به مدت دوازده سال کودن و خاموش در یتیم خونه سر کرده. کم خواب ولی تندرسته. با کسی نمیجوشیده و حتی تفریح و بازیش با بچه های دیگه فرق داشته. علاقه داشته با چوب کبریت و برگ کاش خونه بسازه. از فراش یتیم خونه که هنوز زنده است تحقیق شده و اونم دایره ای بودن خونه هایی که موش می ساخته رو تایید کرده. ولی گفته این خونه ها هیچ وقت دیوار و حیات نداشتند. مدیر مسکن میگه خونه های بازیچه دیروز بنیاد ذهنی دخمه یه که اون حالا توش حکومت میکنه. مدیر دولت میگه چرا میگی دخمه؟ بگو قلم رو. مدیر مسکن میگه بله بله. اون همه زمین خالی اونم در شرایطی که هر متر مربع زمین این کشور بار چهل انسان رو به دوش میکشه حتی محل کار و زندگی مدیر دولت ما یه اتاق توی طبقه هفتاد یا آسمون خراشه. مدیر دولت میگه برای من هرس نخورید من اینجا راحتم گفتید زیر بنای موش چقدره؟ مدیر مسکن میگه یه دایره کوچیک به قطر هفت متر و مساحت زمین اطرافش حدود 500 متر. با یه محاسبه بدیهی اندازه مسکن چهار میلیون نفر طی سه سال آینده. اگر بتونیم زمینش رو در اختیار بگیریم توی شیش ماه اول محل سکونت 250 و هزار نفر رو آماده می و میتونیم از چادرهایی که شبها به عنوان خوابگاه در خیابون برپا می کنیم کم کنیم. مدیر پاسداری میگه آروم آقا. باید به حسب وظیفم دخالت کنم و بپرسم شما به چه حقی نسبت به مای عملک فردی از افراد جامعه نقشه کشیدی و حساب کتاب کردی؟ گمون میکنم این انحراف از هدف اجتماعی و فلسفی ماست. مدیر مسکن از خودش دفاع میکنه. میگه که به عنوان مدیر مسکن کشور و به علت مصیبتی که هر لحظه داره بیشتر خودنمایی میکنه این وظیفه من بود که طبق نقشه و با ارقام صحیح شما رو آگاه کنم. مدیر دولت میگه بداخره مشکلی به خوشبینی ما چربید و ما رو دور هم جمع کرد. باید کاری کرد که معنی خوشبینی با محال و معنی نرمش با بی ارزگی یکی نشه. ما فردیت انسان رو حفظ می بیش از اون حد که تاریخ بشر تا به امروز تصورش رو کرده. کوشه شد که حکومت به اون شکل سابق وجود نداشته باشه. ما ضرورت دستور خواستن و دستور دادن رو نابود کردیم. اما لزوم به دایره هدایت کننده مورد تایید همه بود. یه دایره متفرق که فقط برای حل مسائل حاد شکل می گرفت. نیش پرگار توی این دایره روی گرده منه. من لازم میدونم محیط سال خوردهی مثل شما داشته باشم. اما زمنن لازم میدونم بپرسم شما با چه حساب و احساسی به برتری من رضایت دادید و تسلیم شدید؟ من باید مطمئن بشم شما یک دوشیزه خورد رو به بالای دکل نفرستادید تا چماغ سال خورده تجربه هاتون همچنان کارگر باشه. هر لحظه کرور کرور آدم دوروبر ما نفس میکشن. اما اگه ما با این وسرسه بیماروار، که مبادا به نفس کسی لطمه بزنیم بخوایم دنبال راه حل انسانی بگردیم قبل از هر چیزی خود انسان رو گم میکنیم مدیر فرهنگ میگه که تصور میکنم اما مدیر دولت باز وسط حرفش میپره و میگه تصور درد همینه اینجاست که به نقطهی که از اون شروع کردیم برمیگردیم پرگار دایره رو تموم میکنه و برای هزارمین بارون دور میزنه چرا تصور؟ چرا یقین نمی کنید؟ ها؟ چرا مطمئن نیستید؟ مدیر فرهنگ باز میخواد حرف بزنه شروع میکنه که فرصت ما مدیر دولت باز دوباره میپره وسط حرفش فرصت؟ بله منم فرصت ندارم آی دکتر من مریض فقیری هستم اون ای که آخر کار میدین رو حالا بدین با خشم و نفرت تو صورت هم داد بزن تو مردنی هستی داری به طرف پرتگاه میری؟ هیچ دلیلی نداره شما حقیقتی رو که لاقل در نظر خودتون قاطعه تو قالب نیش ظریف و پاکیزه تصور میکنم برزید و به تن من فرو کنید حرف بزنید آقا چی ما رو به قدرت رسون و چی الان مانع قدرت نمایی ما میشه؟ خشم و عجله یا احساس و حقانیت حرس برتری جویی و راحت طلبی شونه به شونه هم اونقدر شدید که حتی منتظر زمان هم نشدیم منتظر جامعه و مردم و پختن آماده شدنشون نشدیم. فکرشون، علاقشونو رو خریدیم و مردم رو کوچ دادیم برن و با بقیه چیزایی که مونده بودن، کسایی که مونده بودن، اون چیزی که میخواستیم رو ساختیم. مدیر دولت میره برای خودش چای می‌ریزه و بر میگرده و ادامه میده. کسایی که ما وارثشون هستیم، تصمیم گرفتن آرمان خودشون رو تو این کشور اجرا کنند حالا ادامه این آرمان به عهده ماست تأمین و بست و آزادی فردی تا اونجا که اگر لازم شد جامعه رو در برابرش ندید بگیریم حالا با همین مشکل روبرو هستیم مردی به نام موش جلوی ما استاده یک فرد رو در هم بشکنیم یا به حاجت یک مجموعه عظیم افراد بی بمونیم مدیر فرهنگ میگه مجبورم داستان خیاطی رو براتون بگم که چند شلوار کهنه و پاره و یه شلوار نو داشت. مشکلش این بود که بهتر شلوار نو رو پاره کنه و باهاش شلوارهای پاره رو وصل کنه یا اینکه به همه چیز بی‌اعتنا باشه و منتظر مشتری برای شلوار پاره بشینه. جواب اینه که هیچ کدوم. اگر شلوار سالم رو پاره کنین، شلوارهای پاره وصله میشن و فعلا ازتون اون راضین. اما متقابلا این فکر براشون پیش میاد که اگر شلوار سالمی هم باشن بعید نیست روزی به خاطر چند تا شلوار پاره دریده بشن این فکر به مراتب خطرناکتر از اونه که شلوارها پاره بمونن مدیر دولت رو به مدیر نفوس میگه تا اینجای کار چیزی علیه افکار موش برای مجاب کردنش دارید؟ مدیر نفوس میگه که نه مدیر دولت میگه و قصد هم ندارید دلیلی علیهش بتراشید مدیر نفوس میگه که این کار یه خیانت اصولیه مدیر دولت میگه پس هرگز هم علیهش دلیلی پیدا نخواهید کرد. برگردیم از اول. ما اومدیم به بشر گفتیم تو آزاد و تامینی. بشر هم اولین کاری که کرد توسعه خودش بود. مثل ماهی تخم ریخت. جای خالی پر شد ولی دیگه جلوی سیل رو نمیشد گرفت. هر قطره این سیل تیشه برنده‌ای بود که با ریشه فکر و آیین ما سر کار داشت. اینطوری شد که با دو تا مشکل اساسی رو برو شدیم مسکن و غذا مشکل غذا با آسونی با غذای آزمایشگاهی حل شد البته من هنوز از عوااق به این کار می ترسم ولی احتمالا تا وقتی غذای آزمایشگاهی عوارضش رو نشون بده نسل ما ها عوض شده و مردان دیگه ای باید با اون سر و کله بزنن ولی مشکل مسکن این یکی هرگز پیشبیی نشده بود که به این سرعت سر بلند کنه ولی کرد ما خودمون تضمین فردییت رو به موش دادیم در مقابل اون قانون راهی رو نشون نمیده. اخلاق راهی رو نشون نمیده و جفتشون میگن باید تسلیم بشیم و بشینیم سر جام. مدیر دولت در مورد زمین های که موجوده میپرسه و مدیر پاسداری هم جواب میده که خیابونا و کوچه ها رو تا حد امکان تنگ کردن و هیچ زمین دیگهی وجود نداره. مدیر دولت میگه این آقای موش خیال نداره ملک خودش رو بفروشه. مدیر مسکن میگه اینطور به نظر نمیاد. اگر چنین قصی داشته باشه ما بهترین و اولین خریدارانش هستیم در واقع به جز ما خریدار دیگه ای نیست. حالا اگر بخوایم ازش بخریم به چه قیمتی باید بخریم؟ همون قیمتی که خودش از ما خریده ولی اگه بخواد لچکانه و به بیگانه بفروشه چی؟ مدیر دولت میگه که در این صورت شما قباله رو قهرن به نام خودمون یعنی مدیریت مملکت تنظیم میکنید مدیر پاسداری میگه آقا این کاملا خلاف قوانین ماست. در ضمن به قول آقای مدیر فرهنگ شلوارهای پاره بد گمان میشن. مدیر دولت میگه نمیتونیم یه طوری ثابت کنیم که توی خونه موش اعمال مخالف ما داره صورت میگیره؟ مدیر نفوس میگه اون یه مرد مجرده و تقریبا با هیشکی رفت آمد نداره. هرچی هم توی خونه‌اش جریان داشته باشه هیچ دوره‌ای رو توی تاریخ سراغ ندارم که بشه افکار و اعمال خونگی افراد رو کنترل کرد. مدیر فرهنگ میگه آقایون این بحث داره ما رو به لبه پرتگاه هولناکی سوق میده. منم فشار این مصیبت عظیم رو حس می کنم اما شاید از راه گزارش مدیر نفوس بتونیم به نتیجه‌ای برسیم. مدیر دولت میگه باور کنید مسخره است. این قبیل تحقیقات به ظاهر متکی به اصول روانشناسی در واقع یه مشت پرونده سازی وحشیانه است. گیریم ثابت کردیم که قنچه یک عقده هقارت این نهال رو پرورونده آخرش که چی؟ مدیر پاسداری میگه اگر تایید بشه مشتیوانه است اون وقت ما قیم قانونیش میشیم. مدیر دولت میگه زمینش رو میکنیم و در عوض یه اتاق با یه پرستار نرمتن بشمیدیم. اون وقت تصور هم می کنیم در راه سلامت این فرد قدم برداشتیم. نه آقایون، این رویه مزورانه است. تو مگه این گزارش رو نخوندی؟ از زبون خودت و خلاصه بقیه‌ی قصه رو برامون تعریف کن. مدیر نفوس میگه دوازده سالش که میشه از یتیم خونه میاد بیرون. هیچ کدوم از حرفهایی که اونجا به بچه آموزش میدادن رو یاد نگرفته بود و تخصص و مهارتی هم نداشت. اما به علت همین بیالاقیگی به یک کار معین آدم همه ای از در اومد و از هر چیز یک کمی بلد بود. نجاری، کفاشی، خیاتی، هر چیزی. از کارهایی که بعد از یتیم خونه گرفته اطلاع زیادی نداریم. فقط آخرین حرفش مصحح روزنامه بوده که اونم با انحلال مطبوعات از دست میده. پیداست میتونسته چیز دیگهی باشه. یعنی ماهرانه از هایی که مسئولیتش رو سنگین می‌کردن فرار کرده. بله. باید فرسوده شد. این مرد خودش رو صوحان زده و فرسوده کرده. شاید اوسیان علیه نفس همین باشه. مثل یه توپ پلاستیکی که خاصیت اتصاحش تا بینهایت پر از درد و مصیبت میشه به حد اشبا. باید منفجر بشه اما نمیشه. حتی اگر خار زریفی به تن این توپ بره منفجر نمیشه. بلکه فقط روزنه باز میشه تا درد و هقارت ازش بیرون بیاد. فقط کسایی که هزیونای گاه و بیگاهش رو شنیدن میدونن که آرزو داره خونه ای داشته باشه پرت و دور و بیسر و صدا. مدیر دولت میپرسه دور از کی؟ دور از کجا؟ مدیر نفوس میگه فکر میکنم این مرد اسیر بیقرارترین خودخواهی ها بوده. تجردی که داشته سیرش نمیکرده و میخواسته باز هم دورتر بشه. از خودش طبیعی هم هست، اگر من بخوام خودم و فراموش کنم باید دور از دایره ای باشم که وجود منو با همه زشتی و زیباییش با سراحت برام اعتراف میکنه. دور شدن و اون امروز از خودش دور شده. یا از دورنمای خودش دور شده، منظوی و بیصرف شده. به گوشش، فرمان ایست داده. شاید تنها صدایی که تمام این شهر میشنوه صدای زنگ ساعت عمومی شهر باشه. و این و این بیماریه. نوعی مخالفت. ما هرگز برای تمین موجودیت اون واحد انسانی که منبع حیاتی وجود خودش رو تعطیل یا نابود یا بی‌مصرف میکنه تعهدی نکردیم. البته شاید روزی برسی که انسان امکان چنین تعطیلی رو به دست بیاره اما باید از لحاظ رفاه اجتماعی به درجاتی بالای اون چیزی که الان هست رسیده باشه وگرنه تاریخ سرشار از بیمصرف ها و منذبی هاست و حکومت ها هم نسبت به این قضیه آرفانه سکوت کردند مدیر پاستاری میگه خب در مورد خونه موش چه اطلاعاتی داریم؟ مدیر مسکن میگه همونطور که مستحضرید آخرین فرقه مذهبی که در دیار ما میزیستن زیستن آداب و رسوم خاصی داشتن اونا مردهاشونو به جای اینکه دفن میکنن یا بسوزونن توی بناهای مدوری از شهر که بدون سقف بودن می‌وردن تا اونجا توسط پرنده ها خورده بشن خونه فعلی هم شهری ما موش یکی از همین بناهاست که مقارم با تاسیس نظام اجتماعی جدید متروک و بدون مالک مونده بود مالکیتش به نام دولت جدید ثبت شده بود. پنج سال بعد از تاسیس نظام جدید اسم موش سر زبون ها افتاد. موش که اون زمان 20 ساله بود به عنوان آخرین شغل خودش رو به عنوان نمونه انسانی در اختیار پزشک جوانی به اسم یاشار گذاشت که داشت روی انهدام مرگ طبیعی کار میکرد. در نواری که شامل متن شفاهی قرارداد این مرد با نخستین دولت نظام نوین ماست این موضوع ذکر شده. اون نوار الان همینجاست. ظهور یا شاید بهتر بگیم خروج موش به این ترتیب صورت میگیره که در گرماگرم اقدامات و فعالیت‌های شبانه روزی اولین سال‌های تحول نامه‌ای به مدیر مسکن وقت میرسه که حاوی پیشنهاد عجیبیه بیشتر به نظر میاد که شخص سبک عقلی به خیال ریشخند حکومت اونو نوشته باشه مدیر مسکن رو به مدیر نفوس میکنه و بهش میگه عین متن نامه باید در گزارشات شما باشه مدیر نفوس متن اون نامه رو میخونه. آقای مدیر مسکن، من ببخشید که به هم نوعی و هم شهریگری و هموطنی اعتقاد ندارم و خودم رو همسایه خطاب میکنم. من همسایه یاد رفته شما که اینک تحت آزمایش دکتر یاشار هستم، همین امروز با خبر شدم که ثروتمندترین مرد یا فرد روی زمین هستم. اگر من امروز جرأت یافتم که با شما جیک بزنم، جز این سببی ندارد. لودگیه مرا ببخشید. جیک که چیزی نیست. امروز می توانم حتی بدون واهمه گوشخراشترین خراشترین عرعرها را سر بدهم. من همینم. یک بوته وحشی خود رو که تا آنجا که حافظه یاری می کند، محصول همین سرزمین است. ولی من زادگاه هم را نمیدانم کجاست و هر کس جز این بگوید به شما دروغ گفته است. البته آدم است و دروغ مرد و زنی که ادعا می پدر و مادرش هستند باور کرده و جاهلانان را تکرار می کند. توصیه می کنم شما نپذیرید ولی به هر حال من به این زمین عادت کردم. این یک. دوم اینکه آیین آین شما ایدئال من است و علاقه و ایمان خودم را نسبت به آن نمیتوانم توصیف کنم. و باز نظر به این که وجود ثروت فقط همین تفاوت که ملاحظه میکنید میتواند در من وجود آورد. به هر نیاز شما به ثروت من و نیاز من به شما و به تحقق آیین شما و امتیازی که در مقابل این ثروت میخواهم آنقدر مسخره و کوچک است که اگر با شما در میان بگذارم حیرت خواهید کرد. به هر حال اگر شما این معامله را نپذیرید باز من ثروتم را به همین کشور منتقل خواهم کرد. و با آن ناچاران خرید وحشتناکی را آغاز می کنم. تمنا می کنم از این شوخی زریف من مکدر نشوید. در خاتمه باز یادآور می شدم که من آرزوی مسخره و کوچک و بسیار کم خرجی دارم که اگر بتوانید برایش لباسی بدوزید، در حقیقت برای آین خودتان لباس محفوظتر یا لباس زخیره دوخته اید. شما اهرمی برای برپاداشتن مرامتان اختیار کرده اید که می بایست من آن لا یزال باشد. بله، پول فقط در این صورت میتواند اهرم افکار باشد. فعلا من دارم، نگران نباشید. یک هفته منتظر میمانم، ولی در نظر داشته باشید که شکل و نحوه مامله را من تعین خواهم کرد و خلاصه آن که هیچ جز آن پنهانی نخواهد بود و از آغاز تا پایان تحت نظر و با شهادت مراجع رسمی و قانونی بین و و فرد به فرد مردم کشور خودمان باید اجرا شود. به انتظار پاسخ شما هستم. دوستار و مؤمن غیر قابل تصور آین شما موش لحظه ای سکوت برقرار میشه و همه در بهت فرو میرن. مدیر فرهنگ آهسته میگه لباسی برای آرزوی من بدوزید و اهرامی برای برپا داشتن آین خودتان برپا کنید. مدیر دولت میگه این معامله با استنبات مدیران اون روزا مثبت تلقی شده. در واقع رشوه بسیار زیبا و منطقی بوده فهمیدیم که موش کلی سروت به هم زده اینکه از کجا این پول آورده ما نمیدونیم ولی خب پیشنهاد داده که در ازای برآورده شدن آرزوش تمام اون سروت رو به دولت وقت این نظام بده مدیر دولت پیشنهاد میده که برای شنیدن ادامه ماجرا نوار صوتی قرار داده موش با دولت رو گوش بدن صحنه عوض میشه و مدیران دستگاه پخش صوت رو میارن مرکز صحنه نور روی دستگاه متمرکز میشه مدیر مسکن میگه از این نوار ده نسخه تهیه شده اما فقط یه نسخش دست ماست یکیش هم دست دادگاه جهانیه این کار به درخواست طرفین قرارداد صورت گرفته به عنوان زمانت اجرا و طرفین این میتونستن این نوارها رو به هر کسی که میخوان اهدا کنن زبط رو روشن میکنند. صدای خس‌خس خس و خیلی ضعیفی پخش میشه. مدیر مسکن میگه در راهروهای اداره مسکن 85 سال پیش هستیم. این جنجال رو موش به کمک مطبوعات راه انداخته. روز قرارداد تعطیل رسمی اعلام شده و تمام مردم از خیابانها جزئیات این واقعه رو دنبال می‌کردند. 300 خبرنگار از 180 کشور جهانی معامله رو گزارش کردند. سه شاهد خارجی هم از طرف سه بلوک سیاسی بزرگ در اینجا حضور دارند مدیر پاسداری میگه بهترین کار ما همین انحلال مطبوعات بوده انحلال مطبوعات باعث میشه خوشباوری، یاوهگویی دروخ و جنجال تا 60 درصد توی جامعه تن از پیدا کنه سه شاهد خارجی به اندازه کل مردم کشور هم شاهد داخلی داره این مرد اجوبه است بدترین بلاها اینه که مردم کشور از ماجرای خصوصی حکومت مطلع باشند. نطفه همه شورش ها همینطوری بسته میشه. بالاخره صدای نوار واضح میشه. موش جوان و مدیر مسکن و مدیر نفوس وقت کشور وارد میشن. گوینده طرفین رو برای شنونده ها معرفی میکنه و بعد به موش میگه تمنّا می‌کنم بنشینید. لطفا خودتون معرفی کنید موش خمیازهی میکشه و با بیحسلگی میگه خودمو معرفی میکنم خب اداره نفوس کارش هیچ نظمی نداره من یک هفته از تقاضا دادم نام و نام خانوادگی منو به موش تغییر بدن اما شناسنامه جدیدم هنوز به دستم نرسیده مدیر نفوس وقت با آرامش و تحکم میپرسه شغل شما در حال حاضر چیه؟ موش میگه موش موش آزمایشگاهی هستم دکتر یاشار احتیاج به یه نمونه واقعی داشت منم خودمو در اختیارش قرار دادم مدیر نفوس میگه چرا این حرف رو انتخاب کردین؟ شاید خیال دارین به انسان جاودان تبدیل بشید موش با پوسخند میگه موش های معمولا میمیره مدیر نفوس میگه پس حتما پاداش این کار باید خوب باشه اسمتون هم سر زبون افتاده و شهرت حوث های تشنه رو سیراب میکنه احتمال مرگ رو پیش بینی کرده بودین؟ موش میگه من اصلا به مرگ معتقد نیستم. مرگ خودش آغاز یه جور زندگی دیگه است. زمین رو باربر میکنی و تو بدن سبزه ها و درخت ها منتشر میشی. من عقیده دارم حتما باید نعش آدم و چال کنند. مدیر نفوس میپرسه به عقاید مذهبی پایبند هستین؟ موش میگه از شما تعجب میکنم. تصور وجود هر چیز دلیل تردید در قبول یا رد کامل همون چیزه. وقتی شما از من میپرسین مذهب دارم یا نه معنیش اینه که خودتون معتقدید هنوزم ممکنه کسایی پایبند باشن. در حالی که ظاهراً مذهب توی جامعه ما وجود نداره. چنین تردیدی هیچ مناسب مقام اجتماعی شما نیست. درسته؟ سکوت طولانی برقرار میشه. مدیر نفوس جوابی برای این حرف نداره مدیر مسکن وقت سعی میکنه موضوع اصلی رو مطرح کنه ممکنه تقاضا کنم پیشنهاد خودتون رو مطرح کنید موش میگه که من از شما یعنی حکومت حاضر یه جیره دائم میخوام که یه آدم مجرد چون خیال دارم همیشه مجرد بمونم تا وقتی که زنده است بتونه با اون گذران کنه و یه تی که راستشو بخواید یه تیک زمین هم میخوام که شما باید به سلیقه من عملیات ساختمانی مختصری توش انجام بدید. من با پولی که باهاش میشه یه شهر رو خرید میخوام از شما یک قبر سوم بخرم. اون دخمه هاشی شهر. مدیر نفوس و مدیر مسکن حیرت زده به هم نگاه میکنند. مدیر مسکن میگه به نام دولت با این تقاضا موافقت میشه. ولی شما... چرا و چطور اونجا رو انتخاب کردین؟ موش میگه برای اینکه دوره. تا من هستم همونطور که میخوام باقی میمونه. و این کاملا مطابق آرزوهای شماست. قسم میخورم. مدیر مسکن زبط رو خاموش میکنه. مدیر مسکن حال حاضر البته. جملههای های موش رو تکرار میکنه. تا من هستم همینطور باقی میمونه و این کاملا مطابق آرزوهای شماست. قسم میخورم. آقایون اون به نظرتون معنی این حرف چیه؟ به نظر میاد این دخمه خاصیت بقرنجی داره که تا آخر زندگی موش دووم میاره. ما باید راه مجاب کردن اونو تو همین کلمات جستجو کنیم. مدیر دولت میگه اون به هیچ وجه بیمار نیست. از همه ما سالم تره. شاید دیوونه باشه اما دلیل جنون خودشو میدونه ولی ما نمیدونیم باز یک سکوت طولانی حاکم میشه مدیر فرهنگ میگه که دقت کنید ما اسیر گذشته این فرد هستیم نمکگیرش هستیم مدیر دولت میگه از این اصطلاح نمکگیر هم متنفرم یعنی چه چرا باید خاکسار دائمی فرد یا افرادی باشیم که در یک شرایط خاص چند قدم با ما راه اومدن و خودشون هم بیشترین لذت رو بردن با به نتیجه نرسیدن بس تصمیم بر این میشه که ادامه نوار رو پخش کنن و این کاملا مطابقه آرزوهای شماست قسم میخورم مدیر وقت نفوس میگه که شما گفتید دوره منظورتون دور از کجاست موش میگه نمیدونم اینطور به نظرم رسید و گفتم مدیر نفوس وقت ازش میپرسه علتش تنفر از جامعه و مردم نیست موش میگه میتونه باشه میتونه هم نباشه من مردم رو به دو دسته تقسیم میکنم 99 درصد حاکم و یک درصد محکوم شما منظورتون کدوم دسته از مردمه؟ مدیر نفوس میگه هدف ما اینه که اون یک درصد هم بتونه ست درصد از حاکمیت سهم داشته باشه. موش میگه و این همون ایدئال منه. مدیر نفوس وقت میگه از نظام اجتماعی فعلی بدتون میاد. موش میگه ای بابا من خودم دارم اصا میذارم زیر بغلش که سرپا بمونه. نه بعدم نمیاد. مدیر نفوس میگه فعلا این امکان به وجود اومده که خودتون خودتونو به حکومت ببخشین. موش میگه بخشش چرا؟ من از این کار نفرت دارم. ما داریم معامله میکنیم. مدیر نفوس وقت میگه که اما انگار شما فقط با نیت زرر وارد این معامله شدین. موش میگه به نظرم وقتی هر دو طرف به هدفهای ظاهری و باطنی خودشون برسن زرر مفهومی نداره. من به هدفم میرسم. مدیر نفوس وقت میگه تعهد میکنید که در اون دخمه فقط زندگی کنید موش میگه نه برای اینکه تدریج تدریجم میمیرم اصولا ما نمیتونیم زندگی رو تعهد کنیم چون دائما مشغول مرگیم مدیر نفوس وقت میگه راستی شما مستمری هم خواستید از چه حسابی باید بهتون مستمری بدیم لابد از بحری که به پولتون تعلق میگیره موش میگه که این تهمت زشت اصلا نباید به ذهن شما خطور کنه من بحر خور نیستم آقای محترم مدیر نفوس وقت میگه که آخرین حرفه شما قبل از موش آزمایشگاهی چی بود؟ موش جواب میده مسحه روزنامه بودم مدیر نفوس وقت میگه که خب میتونیم با همون حقوق و مزایای مسحه روزنامه شما رو بازنشست کنیم موش پوسقند میزنه و میگه لطف میکنید مدیر وقت میگه که راضی نیستین موش میگه به نظر شما من شایسته شغل بهتری نم استعداد و لیاقت شغل مهمتری رو ندارم مدیر نفوس میگه که خب میخوای کار کنید موش میگه نه از دوازده سالگی هشت سال تموم همه جور کار کردم و به نظرم کافیه مدیر نفوس میگه که پس فقط مزد میخواید اما همزمان ترفی هم میخواید حکم بازنشستگی هم میخواید این منطق قابل قبول نیست شما فقط به خاطر مزد بیشتر استعداد خودتون رو به رخ میکشید. موش میگه که وقتی با مزد ناچیز از صبح تا غروب جون میکندم کسی احوال استعدادم رو نمیپرسید. مدیر فرهنگ فعلی دستگاه ضبط رو خاموش میکنه و میگه این مرد عجیب دنیای خاصی داره. مدیر پاسداری میگه به نظرتون عجیب نیاد یکی از میلیون ها قلب سنگی که روی زمین ریخته. منتها این یکی بال در آورد و شیشه قصر یک فلسفه رو شکسته. اینه که مهم شده. مدیر فرهنگ میگه ولی لیاقت یک کار مهمتر رو داشته. اینطور نیست. مدیر پاسداری میگه معلومه که داشته. استعداد مقاومت، خونسردی، بیعتنائی. مدیر دولت جواب میده که با خودش جنگیده. استعدادش رو احتکار کرده و هنوزم میکنه. اون وقت انتظار داره به خاطر استعدادش که فقط کنایه های ریز و درشت آفریده مورد ستایش و انایت باشه. مدیر فرهنگ دوباره دکمه پخش دستگاه رو میزنه. مدیر نفوس وقت میگه که فرض کنیم شما آدم با استعدادی هستید. خب مگه نباید اونو نشون بدید؟ وگرنه برای یک استعداد مشکوک و بلقوه چطور میشه ارزش فوق سابقه قائل شد. موش عصبی میشه میگه که استعداد مشکوک پنهان ولی نه در مورد این توضیح نمیدم. من میخوام نشون بدم که باز هم میتونم سکوت کنم توی بازوی کدوم پهلوون حقیقی یا افثانهی زنده یا مرده قدرتی سراغ دارین که بتونه سکوت منو بشکنه استعداد مشکوک و بلقوه در این صورت من از شما میخوام که جریمه همین شک رو به من بپردازید مدیر نفوس میگه که خیلی بغرنج صحبت میکنید. احساسات داره مغز شما رو به آتیش میندازه موش میگه که من فقط و فقط با قلبم زندگی می میکنم. قلب از مغز پایدارتره. فقط باید خوب خودتو شناخته باشی. مدیر نفوس میگه خب برگردیم سراغ مذاکره. برای خودتون میزان مستمری در نظر گرفتین؟ موش میگه بله بهتون گفتم که باید اونقدری باشه که اگه هزینه زندگی آن به آن تغییر کرد مخارج عادی یا آدم مجرد رو کفاف بده. در زمین باید اقرار و تصریح کنید که من به حکومت رشوه ندادم. مدیر نفوس میگه چرا اصلا فکرت رشوه به سرتون اومد؟ مثلا اینطوری فکر نمیکنیم؟ شما در یک لحظه حساس به کمک حکومت اومدین و این هرگز فراموش نمیشه. موش از جا میپره. متشکرم. بذارید بقیه این جمله رو زمان ادا بکنه. خب من از نوار مذاکرات پنج نسخه میخوام. و میخوام طرفین این در واگذاری نسخه های این نوار به هر فرد یا مقام داخلی یا جهانی آزاد و مجاز باشند مدیر نفوس میگه بله مانعی نداره همین الان هم تمام دنیا از این مذاکره با خبرن موش میگه که ولی فراموش میکنن فراموش میکنن بسیار خوب همه ای امیدم اینه که شما رو موفق ببینم مدیر نفوس وقت جوابش رو میده. میگه که همین حالا ببینید. موش میگه امروز نه. اجازه بدید محکول کنیم به فردا. اینجا بلاخره نوار تموم میشه. مدیر فرهنگ فعلی که در فکر فرو رفته میگه همه مردم از این ماجرا باخبرن اما با میل و رقبت فراموش کردن که چنین قلمرویی با تنها یه سرنشین کنارشون وجود داره نمیدونم شاید ما واقعا با یه بیمار طرفیم من دلیلی نمیبینم که مردی با تار و پودی انقدر حساس تقاضای ما رو رد کنه احساس میکنم اون با ایمانترین پیروه آین ماست بر تقدیر پیشنهاد میکنم به سهم خودم از این بیمار عیادت کنم شاید درمانی، شاید هم اتمام حجتی، اونطور که اون بپسنده پیدا کنم. و در پی سکوت و تایید خاموش حاضران در جلسه پرده پایین میفته. هر دوم این نمایشنامه در دخمه موش میگذره. یه دیوار بلند و مدور با سقفی خیلی بلند به رنگ سفید. وسط صحنه یک ماکت وجود داره. این ماکت از دخمه و خونه های اطرافش و ساختمون های اطرافش رو نشون میده. دم صبح و نور ملایمی تمام دخمه رو روشن کرده. موش، در حال حرکت و نقاشی کردن صدای کسی رو میشنوه که قصد داخل شدن داره مدیر فرهنگ داخل میشه و خودش رو معرفی میکنه میگه شما نقاشی هم میکنید نمیدونستم موش میگه که اون قدیمی ترین معشوقه منه مدیر فرهنگ میگه پس به نظرتون معشوقه ها ساختنیان موش میگه کم و بیش اگر از جنس آدم باشه مرتب زیر روی خودش رو عوض میکنه اما نقاشی اینطور نیست همیشه نسبت به آرایش و ساختی که بهش میدی وفادار میمونه امیدوارم ناراحت نشده باشید که صبح به این زودی ازتون خواستم اینجا بیاید. یه دفعه ساکت میشه و به سمت پنجره میچرخه نور ملایمی پنجره رو روشن کرده. تابلو رو کنار میذاره و با اشتیاق زیاد به گسترش نور نگاه میکنه انگار افسون شده نور به آرامی به اوج خودش میرسه و همین لحظه ساعت عمومی شهر پنج ضربه می نوازه. موش دستهاش رو باز میکنه و روی پنجه ها و قد میکشه نفس عمیقی میکشه و کل دخمه پر از نور میگه می میدونین آفتاب برای آدمایی که توی آسمون خراش زندگی میکنن کی طلو میکنه؟ نیم ساعت بعد از ظهر برای خیلی ها توی اون خیابونا ها فاصله طلو و قروب خورشید دو ساعت بیشتر نیست. اما دخمه من به همسایه هم اجازه میده تا مزه طلو و غروب واقعی رو از یاد نبرن. رابطه من با طبیعت بریده نشده. همیشه قبل از طولو خورشید بیدارم من هر روز صبح باور میکنم که زندم به ماکت دخمه روی میز اشاره میکنه اگه میدونستی چی توی اون دخمه کوچولو انبار شده ایمان من به حرفام رو باور میکردی مدیر فرهنگ که به شدت احساساتی شده میگه زبانی پیدا نمیکنم لحن و کلمات مناسبی اما موش حرفشو قطع میکنه. تمامنا میکنم. اینجور احساسات بهتر به زبون نیان. چون آدم حس میکنه که دارن زهر تملق و تعارف رو میریزم تو حلقش مدیر رو دعوت میکنه که برای خودش چای بریزه. خودش هنوز داره از پنجره بیرون رو تماشا میکنه. سکوت رو با آرامش و تنهایی اشتباه نگیرید. البته خوبه آدم در تنهایی فرصت پیدا میکنه در ساختمان روح و جسم خودش تجدید نظر کنه. اما من تنهایی رو نمی پسندم و همیشه به سختی تحملش کردم. بودن شما اینجا منو به پسند خودم نزدیکتر میکنه. مدیر فرهنگ میگه اتفاقا من خاموشی و آرامش رو خیلی میپسندم. آرامش یه عامل سازنده است. کورترین گره ها رو در تنهایی و خاموشی میشه باز پنجره ای که شما از اون بیرون رو تماشا میکنید، من تصور میکنم مدت‌هاست که در شده در عوض به پنجره دیگه معتقدم اون پنجره چشم شماست و از پشت اون فقط تصویرهایی که توی ذهنتون انبار شده و هر کدوم اندازه تمام شهر بزرگ شده رو میبینید ولی من در شفافیت پنجره دوم شک دارم موش میگه حالا باید چیکار کنیم مدیر فرهنگ میگه باید کمبود وقت رو هم به شما یادآوری کنم. شما عجله ندارید ولی من به همکارام داریم. هرکس بیش از هر چیز قاصد نفس خودشه. ماموریت و وظیفه در آین ما بیشتر همین معنی رو میده. موش میگه ولی توضیح نمیدین چرا این عجله لازم و اجتناب ناپذیر شده؟ مدیر فرهنگ میگه ملاحظه کنید من یه فرد هستم و شما یه فرد. فرد سالسی هم وجود داره. موش میگه شما خیلی پخته‌تر و مؤمن‌تر از همکارانتون حرف میزنید. وقتی گفتید و فرد سالسی وجود داره من خیلی لذت بردم. میتونستید بگید دیگرانی هم وجود دارن. راستی دلیل عجله شما همین افرادین که یک ساعت بعد از ظهر از طلو آفتاب باخبر میشن؟ خیلی عزیز شدن. باور نکردنیه. مدیر میگه وقتی بالای سرشون فقط خودشون رو ببینن اینطور میشه. موش میگه، خب پس شما چی کار اید؟ مدیر فرهنگی میگه، عجیر، من کار میکنم، سعی میکنم فرد شناس باشم. موش میگه، فکر نمیکنید یه آدم عادی از کوچه و بازار بهتر از شما میتونه این شناسایی رو به دست بیاره؟ برحال، داشتن یک پست سنگین اجتماعی امکاناتی که برای یک فرد معمولی هست رو از آدم میگیره. مدیر میگه، من به این موضوع عقیده ندارم، به خود شخص وابسته است. مسئله اینه که هرکس کس اصولاً اصیلترین و کاریترین برگاه های وجود خودش رو جلوی آدمای به اصطلاح بالاتر به میدون میکشه. چون طرف شدن فرد عادی با افراد عادی کوچه و بازار ضرورت علنی شدن خفایای روح هیچ کدومشون به بار نمیاره. و یه دلیل دیگه هم شهری عزیز. یه مرد عادی کوچه و بازار میتونست به راحتی به دخمه شما بیاد و با گفتگو کنه؟ موش یکمی کمی فکر میکنه و میگه بله. مدیر فرهنی میگه ولی آیا کسی به دیدنتون میاد؟ موش میگه نه. مدیر میگه به خاطر اینه که شما در ذهن و چشم اونا عظمت محبوب ولی ترسان که یکی از قدیسان اهدعتیق رو دارید. این عظمت حسادت یا خشم به بار نمیاره ولی محبت ناشی از اونم محبت به که فاصله و جدایی رو دراز و درازتر میکنه موش میگه شما در دوختن لباسهای رنگین و فریبنده برای منظورتون خیلی زبردست هستید مدیر فرهنگ میخنده و میگه محیط در انسان تاثیر میکنه دوست عزیز شما منو یاد یک واقعی دوران جوانی موش به شدت اصبانی میشه و میپره وسط حرفش نه آقا به مدرسه بر نگردید من از شما انتظار همچین مقدمات کودکانی رو ندارم. من شما رو به یاد چیزی میندازم. بعد اونو تعریف میکنید و نتیجه تون اینه که هزار تقسیم برای هزار مساویه با یک. این تدریس خیلی کهنه شده من ترجیح میدم اینطوری با هم رفتار کنید. از در وارد بشید و برید سر اصل مطلب. یا با سر برف راشته و با صدای بلند بگید ما زمین تو رو میخواییم. تو نمیدی چرا؟ مدیر بعد از سکوتی طولانی میگه که شما انسان رو چی معنا موش میگه متکا به زمه میمو تشدیدته مدیر میگه خب گاهی متکا ممکنه بلغزه و شانه خالی کنه شما این گریز رو چطور تعبیر میکنید؟ موش میگه به نظر شما این متکا با چی پر شده؟ بلاخره هر متکایی قبل از پر شدن فقط یه تیکه پارچه است مدیر فرهنگ میگه پس داریم راجع به متکای واقعی حرف میزنیم فرض کنیم با پنبه پر شده موش میگه شما دقیقا اون چیزی رو انتخاب کردید که من انتظار داشتم. مدیر فرهنگ میگه با این مثال ها به کجا برسید. موش میگه به اینجا. اگه این پنبه رو حسابی فشار بدیم تبدیل به توپ میشه. اگه این توپ رو به یه جسم سخت بزنیم پس میزنه و فرار میشه. دلیل این گریز فقط فشاردگی است پنبه نمیخواد نه اراده میکنه. از چیزی که به سرش میاد هم گریزی نداره. این وضع متکاست. مگر اینکه هرگز نخوام بهشتکی بزنن مگر اینکه اختیارات متکا غیرقابل قابل تفویض بشه مگر اینکه متکا نتونه مرد آزاده‌ای چون شما رو اجیر کنه مگر اینکه حتی ذرات متکا هم به هم متکی نباشن مدیر میگه بشر چرا عادت کرده که از راه دورتر بره قبول دارم شما از من بیشتر فکر کردید درباره همه چیز فکر کردید و خیلی زیاد هم پیشرفت طرد وسواس و تنزل فکری فکر بیش از اندازه داره عنصر خیال باف و ناپایداری از شما به وجود میاره همیشه برای وصول به مقصود باید از جزئیاتی که فقط در نظر خود ما بسیار بزرگان صرف نظر کرد خواهش می کنم شما هم این رو بکنید موش میگه اجازه بدید من یه خواب برای شما تعریف کنم خواب میبینین توی خیابون درندشت و بی آب و سایه هستید و اتش دارید. تشنگی در شما اوج میگیره و به حد علای خودش میرسه. با حرس و آرزوی آب توانتون رو جمع میکنید و آخرین قدم هاتون رو بر میدارید و بعد تالاپ سرنگون میشید. خب از خواب میپرید. حالا تو اتاقتون هستید و اینجا یک کاسه آب هست. ولی اونقدر زیاد نیست. یه قدریه که میتونه بگینگی اتشی یه نفر رو برطرف کنه. حالا توی این اتاق یه مرد دیگه هم هست که برادر شماست چیکار میکنید؟ آب رو برمیدارین و سر میکشین اینطور نیست؟ مدیر میگه معلوم نیست موش میخنده و میگه اشتباه کردم وقتی مثال رو دیگران باشه آدم راحت و روشن جواب میده خب بذارید اینطوری بپرسم قالب افراد چیکار میکنن؟ مدیر میگه آب رو میخورن خب نتیجه موش میگه خب حالا آیا به شما ربطی داره و اساسا دلیلی داره که برادرتون از خواب بیدار کنید و ازش بپرسید آیا خواب بیابون نمی دیده و تشنش نیست؟ که اگه اینطور بود آب رو جلوی اون بگیرید یا اینکه هر کدوم یه مقدار از آب رو به گلوتون بمالید و باز هم جفتتون تشنه برگردید و بخوابید. مدیر میگه خب پس شما هم مثل قالب افراد علاقه دارید کاسر رو بردارید و سر بکشید. موش میگه من حق ندارم خواب برادرم رو بشکنم. معنی این عمل محبت و لطف هم نمیتونه باشه. حس میکنم حالا مدتی مثل یک گوی فلزی گداخته از کوره بیرون پریدم و دارم آروم آروم برای خودم سرد میشم. این حتی اگه اسمش تلافی باشه، تلافی ظالمانه ای نیست. مدیر میگه که ولی فراموش میکنید که کوره پر از گوی گداخته است. شما اونها رو میبینید؟ موش میگه اونا هم چشم داشتن و منو دیدن. مدیر فرهنگ میگه پس چیکار باید کرد؟ شما دارید مرتکب نوعی تکرار میشید زندگی به نظر شما همینه تکرار و تکرار و تکرار موش میگه زمان رو وقایه پر میکنن اما تصویر وقایه به نظر من مثل چند تا دایره منطبق به هم نیست من دور زدن زمان رو قبول دارم ولی نه اونجوری که تا امروز تعبیر شده بلکه اینجوری اول یه نقطه و بعد حرکت شروع میشه و لحظه به لحظه شعاع عمل شعاع حوادث و شعاع پیچیدگی ها وسیع تر میشه درست مثل یک کلاف نخ که یه بچه بخواد باهاش یه توپ درست کنه کار با یه گره شروع میشه و حجم گره آن به آن بزرگتر میشه من زندگی رو اینطور میفهمم مدیر فرهنگ میگه و به سر تا سر این کلاف بازیچه های رنگارنگی بسته شده که اونا رو انسان صدا میزنن موش میگه بله و این بازیچه ها همدیگر رو به بازی میگیرن میرمن، نزدیک میشن، خش میگیرن، فریاد میکنن، تحقیر میکنن، تحقیر میشن هر بازیچه مترسد فرصتیه که بتونه کمتر تحقیر بشه و بیشتر تحقیر کنه کمتر فرمون ببره و بیشتر فرمون بده یه بازی دور و دراز پوچ ولی اجتناب ناپذیر. اون وقت ناگهانی ده از همین بازیچه ها مصمم میشن علیه واقعیت وجود خودشون وارد جنگ بشن علیه همون خواص و اعمال و احساساتی که واقعیت وجودشونه حقیقت وجودشونه مدیر میگه من دارم کم, کم شما رو از اون اتهامی که میگن تبرعه میکنم موش میگه آه بیماری نه تمنا میکنم منو تبرعه نکنی تصور کاملا درستیه. من واقعا مریض و بیمار تفکرات و دانش خودم هستم مدیر فرهنگ میگه احساس مسئولیت و وظیفه یعنی ضعف و محدودیت در اندیشه آقای محترم. موش میگه وظیفه و مسئولیت در هر حال برای همه هست. مدیر میگه میتونم بپرسم وظیفه شما چیه؟ موش به سمت ماکت دخمه و ساختمونهای اطرافش میره و تمام ستونها رو با خشونت میخوابونه. نمونه دخمه الان بهتر به میاد. موش میخنده و میگه وظیفه من حفظ خودم در برابر طبیعت، و در برابر انسان هاست دشمنان بزرگ و عزیز من مدیر میگه امروز اگه تعهدات ما وجود نداشته باشن شما هیچ گونه مسئولیتی نخواهید داشت وظیفه شما رو در اصل ما داریم انجام میدیم وظیفه موجود زنده رو کرخت میکنه چرا باید من اختیاردار تو باشم؟ موش میگه این کار دست و رو میبنده نه؟ ولی راه بازگشتی وجود نداره روزگار از شما چیزی ساخته؟ که میتونستین و میخواستین که باشین. مدیر فرهنگ پریشان از جاش بلند میشه که بره. میگه شما میتونید هرطور که دلتون میخواد فکر رو عمل کنید. اما لطف کنید و به من اندرز ندید. من هنوز فکر میکنم و یقین دارم چندین میلیون نفوس در حیات دخمه شما میشه سکنا داد و سریح هم بگم که روی دوش شما یک مغز بیبند بار که از بیکاری پرکار شده سنگینی میکنه دوست محترم. موش با تمسخر میگه اگه دلتون به حال دوش خودتون سوخته میتونید مدیر میگه باشه باشه مسخره کنید و به سمت در میره میگه من قانه شدم شما دارید تلافی میکنید هاشا هم فایده ای نداره چشم و زبان وجود شما همه همین رو فریاد میزنن موش میخواد حرف مدیر رو قطع کنه و انکار کنه اما مدیر باز هم ادامه میده این تلافی هم حق شماست رفتار شما به هزار و یک دلیل معقول و انسانیه قانونی هم هست شما این زمین رو نمیفروشید نمیبخشید اجاره هم نمیدید این حق شماست و هیچ فشاری هم نمیتونه مجبورتون کنه کوچکترین فشار مساویه با نفی اصول اجتماعی این کشور موش بازوی مدیر فرهنگ رو میگیره و اونو سمت ماکت میاره بیاید اینجا خواهش می کنم من میل ندارم شما منو با این تصور ترک کنی. شما خیال میکنید من تلافی میکنم، مریضم، مخالف شما هستم، همشم به خاطر این زمین ولی مردم فقط از شما میخوان، از من چیزی نمیخوان. مدیر میگه مطمئن باشید کسی مردم رو علیه شما تحریک نخواهد کرد. اصلا شاید چنین تحریکی غیر ممکن باشه. موش میگه نه نه همیشه امکان پذیره، صبر کنید، بیره سمت دیوار و کلید برق رو میزنه. نور اطراف به شدت ضعیف میشه، من نور روی ماکت شدت میگیره. میگه، خیال کردین میتونین مهار رو بردارین؟ زندگی همینه، هر آن یه دروغی در کاره که نسبت به دروغ پیش از خودش راستر به نظر میاد. اما فقط خیال کردین، من همیشه فکر میکردم بشر نباید متکی باشه. بعدها به این نتیجه رسیدم که متکا هم نباید باشه، نه تکیه بده و نه بهش تکیه بدن. چون هر کدوم از این دو حالت وجود داشته باشه تجلی حقیقت فرد امکان نداره. نتیجه اتکای چیز دیگه است که به فرد ربطی نداره. شما میتونید بگید که به چیزی متکی یا متکای چیزی نیستین. درد سرتون نمیدم شما نمیتونید منو معالجه کنید. بشر هرگز قادر نیست، آماده نیست، لایق نیست، مستعد نیست. این یه انصری نیست که به قالب خودش وفادار بمونه. مساوی، مختار، آزاد اینها زشتترین فریب روزگارن با هیچ مغزی، با هیچ بازوی نمیشه یه دنیای اینطوری ساخت و اگرم ساختین دیگه انصار زنده و متفکر اون دنیا اسمش انسان نیست افسار نابود شدنی نیست آقای محترم هر دستهی فقط افسارهای دسته قبل از خودش رو نابود میکنه تا بتونه پوزه خودش رو به بشریت سوار کنه انسان، این اجوزه هرگز روی بلوغ معنوی رو نخواهد دید. اینجا رو نگاه کنید. به ماکت اشاره میکنه. تصویر یک حقیقت کوچیک های جنون برای اصالتش کوشش شده و حتی بیماروار. وقتی توی یتیم خونه بودم میدونستم بیرون هست. بچه‌های هستن و اونها از من راحت ترن. البته من ناراحت نبودم ولی همیشه اسم کردم اونها راحت ترن. این احساس 20 سال تموم مثل محکومی که مجازاتش زدن به با آفتاب باشه چشم ذهن منو زده. بعدها به خاطر نون و سقف و تمپوش شرف ارادم به زنجیر کشیده شد. معنی کار همیشه این بوده. شما فقط مفهوم ناناور رو تونستین از بین ببرین. اتفاقی که همه منتظرش هستند و در هر میلیون نفر شاید برای یکی پیش بیاد پیش اومد. بله، حادثه نجات دهنده. اون وقت مرض من فقط از نظر من قطعیت پیدا کرد. با تصاحب این دخمه با واگذار کردن ثروتم به شما، من توی این استوانه آجری تونستم افکارم رو تنظیم کنم، توسعه بدم. تونستم سیر ثابتی از ثبات رو برای خودم ایجاد کنم. فکر کردم اگر با پیرووی از هیچ آینی، با چاکری در دستگاه هیچ حاکمی، با زندگی در کنار هیچ قومی به دلخواه بقرنج و پروسفسه خودم نمیرسم. پس باید یه چنین سرپوشی داشته باشم. این استوانه، این دخمه فقط به زمین متکیه. این سرنوشت بشره مجبوره به زمین متکی باشه ولی باید همسایه دیوار به دیوار نداشته باشیم تا بتونیم استقلال خودمون رو باور کنیم یا باید یه فاصله خیلی مطمئن وجود داشته باشه همسایه حسوده یا بالاخره حسود میشه خونه همسایه ما چه میدونیم با چه استحکامی بنا شده شاید امروز یا فردا خراب شد. وجود یه خونه مستقل اون رو وسوسه میکنه از کجا معلوم که یه روز خودش از به سر خونه من خراب نکنه از کجا مالو این بود که این قبرسون رو انتخاب کردم و فاصله اونو طوری در نظر گرفتم که اگه یه روز خونه‌های اطرافم تصمیم گرفتن یک یکسره ویرون بشن ب امید اینکه متکایی پیدا کنن باز دستشون به خونه‌ی من نرسه هیچ وقت جنگل دیدین درخت‌ها رو دیدین چطور قطع می‌کنن یه پهلوی پایه درخت رو با تبر خالی میکنن و بعد درخت به اینکه لرزشی به قامت رشیدش راه پیدا کنه با سر با تمام هیکلش استوار و مغرور سرنگون میشه البته البته برای یه ساختمون ممکن نیست به این شکل ویرون بشه اما من این امکان رو برای ساختمونام در نظر گرفتم و بعد فاصله رو انتخاب کردم ولی پیشبینی من اشتباه از در اومد گوش کنین این سرزنش رو دائما این روزا شنیدم موش قسمتی از نوار مذاکره رو پخش میکنه صدا میگه ولی چطور اونجا رو انتخاب کردین؟ برای اینکه دوره تا من هستم اینطور که میخوام باقی میمونه و این مطابق آرزوی شماست قسم میخورم و بعد صدا قطع میشه موش ادامه میده توصیه مداوم دقدقه و بیهودگی این هم یه معنی زندگیه شما میخواستین افراد متکی به نفس و مستقل باشن اینه که من گفتم مطابق آرزوهای شماست من توی این دخمه خودم اونطور که شما میخواین حس میکنم اما قسمت بعدش حدس میزدم تا وقتی زندم درختی به اون عظمت سبز نمیشه که اگه قطعش کنن بتونه روی سر دخمه من بیفته نه من هیچ اشتباهی نکردم. شما رو عقل ساره بونی میکنه ولی من پی صلیقه و احساسات و تفکر خودم رو با جنون ریختم برین دیوارا رو به آسمون پیپند بزنین ولی از من چیزی نخواین من فرضیه شما رو تنهایی به اثبات رسوندم این روح من، این خون من، این وجود منه. من نمیتونم روحم رو تقسیم کنم یا ببخشم یا بفروشم. من آفتاب رو نمیفروشم. من نمیتونم مثل یک ریک ته چاه فقط روزی چند لحظه صورت آفتاب رو ببینم. من من من. مدیر فرهنگ که بالاخره پی به همه چیز برده حیرت زده میگه تمام پنجره روشن میشه و بعد ساعت شهر پنج بار زنگ میزنه پس این قانون طولوه شماست و بدون اون زندگی نمیکنید. کنید موش میگه بله بله همین طوره الان بهتون ثابت میکنم تو دل این دخمه روی ماکت پر از دینامیته و این مار سیاه که از دخمه تا صلیب کشیده شده فیتیله اونه الان بهتون ثابت میکنم که از وقتی من تصمیم بگیرم فقط چهل ثانیه طول میکشه با فندک فیتیله رو روشن میکنه فیتیله به سرعت میسوزه اما بعد از چند ثانیه موش قیچیش میکنه حالا 20 ثانیهش گذشت و فقط 20 ثانیه مونده مدیر فرهنگ از موش میپرسه که در زمستان که آفتاب نیست چیکار کار میکنه موش میگه من بودن آفتاب رو حس میکنم آفتاب هست همیشه هم هست هیچ ابری نمیتونه مانع این حس بشه مدیر فرهنگ میگه از اینکه شما رو خسته کردم معذرت میخوام و از همون دری که اومده بود بیرون میره. موش به دنبالش میدوه و فریاد میزنه صبر کنید. من تقسیم نمی کنم. نمی بخشم، نمی اتکا، متکا، تولو تولو غروب. پرده سوم در دخمه خاموش موش قبل از طولو آفتاب میگذره. هوا ابریه و سکوتی سنگین حکم فرماست. تابلوهایی به دیوار نصب شدن که روی تمام اونها رو رنگ سفید پوشونده. کنار ماکت یه چهارپایه است که روش یک رادیو قرار داره. موش خسته و پریشون وارد میشه. آسمون نگاه میکنه و ابر سیاه سنگینی رو میبینه. رادیو رو روشن میکنه و باز بعد از مدتی خاموش میکنه به طرف تابلوی نقاشی میره و چند دقیقه با شتاب روش کار میکنه پشت به تماشاگرها میسته و فکر میکنه که تابلو رو کجا نصب کنه تابلو به دو قسمت تقسیم شده یک قسمت سفید که روش یک دست سیاه نقاشی شده و یک سمت سیاه که روش یک دست سفید نقاشی شده کورمال کورمال به طرف ماکت میره و نقاشی رو پاش میذاره. اساس به ماکت برخورد میکنه و اونو خراب میکنه. موش وحشت میکنه و میگه نه! نه! ما نمیخواستیم! ما نمیخواستیم این ترشه! در خود فشرده میشه و قهقهه طولانی و دیوانواری میزنه. بعد سکوتی طولانی حاکم میشه. جلوی پنجره می ایسته. نور فضای دهانه پنجره رو کم کم روشن میکنه موش دوباره آغوشش رو برای نور باز میکنه و ساعت شهر از دور پنج ضربه میزنه موش رادیو رو روشن میکنه رادیو میگه اینجا رادیو تورفنج ساعت پنج بام داد. توجه کنید. اختار به تمام افراد کشور. توجه کنید. ساعت دوازده بامداد امروز اعلامیه فوقلادهی در باب یک مسئله کاملا حائز اهمیت ملی از طرف دولت منتشر خواهد شد متن چاپ شده اعلامیه بلافاصله پس از انتشار در رادیو برای کسب نظر فرد فرد در تمام کشور توضیح خواهد گردید توجه توجه ساعت دوازده بامداد نور کم میشه صدای رادیو همچنان شنیده میشه پس از تاریکی کامل یکو صحنه روشن میشه. آسمان خراش‌های بلند و یک تیر سیمانی که یک بلندگو به اون نصب شده رو در خیابون می بینیم میانجی که راوی قصه است به اون تکی داده و سیگار دود میکنه میانجی میگه به هر حال هنوز 6 ساعت و 48 دقیقه تا صدور اعلامیه العاده دولت وقت داریم. به جلوی صحنه میاد. و از بین تماشاگرها از سالن خارج میشه چیزی که شنیدید نمایشنامه موش اثر بهمن فرسی بود که در سال 1342 به چاپ رسیده. همینطور که مشخصه این نمایشنامه نماد پردازی های سیاسی اجتماعی زیادی داره و یک نمونه ایرانی برای توصیف یک جامعه و سکونتگاه خیالی آرمان شهری در زمانی مپمه. البته زمان مپم که میگم دقیقا درست نیست چون ابتدای نمایشنامه زمان نمایشنامه رو پس فردا در نظر گرفته پس میشه اینو به نوعی تعبیر از آینده دونست دقیقاً این اثر در نقطه مقابل آثاری مثل 1984 برج و حتی برف شکن که در این ها به شهرت رسیده قرار میگیره اما این ایده آرمان شهر تنها محدود به هنر و ادبیات باقی نموند و راهش رو به گفتمان سیاسی هم در دنیا پیدا کرد مثل اندیشه مارکسیزم و تمام مشتقاتش که جامعهایی رو به تصویر میکشند که ایدئال مارکس در درون از بین رفتن طبقات اجتماعی و پخش شدن سرمایه است. اما خب دیدیم که در عمل این ایده شکست خورد و در بسیاری از موارد مثل کوبا، رومانی، شوروی و چند مورد دیگه منجر به دiktاتوری و در نهایت فروپاشی شد. حالا اگر یک مقداری ساده سازی کنیم و ایده مارکس رو یک ایده جامعگرایانه تلقی کنیم، بهمن فرسی در موشک ایده فردگرایانه رو در بستر قصه خودش داره مطرح میکنه که در اون صلاح فرد به صلاح جمعی ارجهه. فرسی با استفاده از چند شخصیت که مدیران بخشای مختلفی از دولت هستن این ایده رو مطرح میکنه و داستان خودش رو هم جلو میبره. جسدی که فرسی در پرده اول نمایشنامه میگرفته تمجید و دفاع از ایده مطرح شدهش هست، ولی خب به محض شروع پرده دوم با کاراکتر موش در مقابل ایده خودش مییسته و اون رو نقد میکنه. وقتی به نمایشنامه اینطور نگاه میکنی احتمالاً جذاب و متفاوت به نظر میاد. حمیده نویسنده هم نوع پرداختش. اما در عمل فلسفه موش بسیار مبهم باقی میمونه و چیزی که از این نمایشنامه در ذهن مخاطبش باقی میذاره یک اثر بسیار پرحرف و سفستهگر وقتی فورسی به شکلی که شنیدید قصه خودش رو پایان میده به نظرم مخاطب رو در جایگاه موثری قرار نمیده که خودش قاضی و تصمیم گیرنده باشه بلکه ظاهرا سردرگمی خودش رو در مواجهه با ایدش نشون میده دیالوگ‌های بی ربط این نمایشنامه گریز از مرکز فورسی رو بیشتر و بیشتر نمایان میکنه البته شما بسیاری از این ها رو نشنیدید چون سعی کردم در مرحله ویرایش روایت رو یک دست و قابل دنبال کردن بکنم البته این چیزی که میگم مبنی بر قضاوت از روی این نمایش نیست بلکه از آثار دیگر و شخصیت خود آقای فورسی اینطور به نظر میاد که ایشون وسواس بیش از ای روی کلمات دارن این اوبرتین که فرسی در نوشتن باعث شده این اثر بی نهایت شخصی باشه و نه اینکه مشکلی با ساره شخصی نویسندگان داشته باشم نه ولی این اثر از دامنه درک مخاطب خارجه و اگر دقیقا متوجه نشدید این نمایشنامه قصد داشته چه پیامی رو منتقل کنه و چه حرفی بزنه کاملا حق دارید در نهایت اسم بهمن فارسی طبق یک تعارف و عادت قدیمی در کنار افرادی مثل رادیو ساعدی و حتی بیزایی آورده میشه در حالی که به نظر من با تمام احترامی که برای عمر هنری و آثار قائل هستم هیچ ربطی بین اسامی ندارن و در یک لیگ دیگری فعالیت می کنند. خب به نظرم تا همین جو کافیه امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. اگر دوست داشتید در اینستاگرام یا کست باکس نظرتون رو درباره این نمایشتام برای ای من بنویسید. از زینب سمامی نویسنده ای متن این قسمت و مهتیس سفری که کار ویرایش متن رو انجام داده بسیار ممنونم. همچنین باید تشکر کنم از نشر محترم بیت‌گل که این اثر و چندین اثر دیگه از آقای فارسی رو چاپ کردند و در اختیار مخاطبان فارسی زبان قرار دادند. از نت باکس اسپانسر این قسمت سپاسگزارم با این حمایت های مالی جایی مثل نت باکس که امکان ادامه دادن پروژهای مستقل چنینی وجود داره. اگر شما هم کسب و کار یا محصولی دارید که علاقمند هستید اون رو در پادکست علف تبلیغ کنید و از ما حمایت مالی کنید. میتونید با ادرسی که در توضیحات قرار گرفته یک ایمیل بزنید و با هم همکاری کنیم. امکان حمایت مالی از سمت مخاطبان هم از پادکست وجود داره که لینک اون در توضیحات قرار گرفته. اما همینطور که در ابتدای این قسمت هم گفتم بهترین حمایت شما معرفی علف به افراد دیگری که ممکنه این پادکست رو دوست داشته باشن. لطفاً لطفاً چنل یوتیوب میتناید کس رو هم فراموش نکنید. از سینا سعدی عزیزم ممنونم که مثل همیشه همراه من بود و کار تدوین این قسمت رو انجام داد. از شما هم ممنونم که تا این لحظه همراه پادکست الف بودید. من مهدی خدادادی هستم و اینجا قسمت 29 پادکست الف به پایان رسید. با آرزوی سلامتی و طول عمر برای استاد بهرام بیزایی عزیز که درگیر بیماری هستند، این قسمت رو به پایان می رسونیم. این نقش ماند از غلمت یادگار عمر. میتناید کست.